آنها در مخاطره کهنگی بودند. ما در مخاطره کهنگی هستیم. در مخاطره بی سببی، در مخاطره بازنشستگی روح، در مخاطره قبار مندگار. بله، آن وقتها ما علت حضور داشتیم. مبارزه به آنها معنا میداد به زندگیشان، به آشفتگی، به دربدری، به بدهکاری و به گرسنگیشان. ما حرارت از روح یخبسته سربازان دشمن می گرفتیم کارمندان بدکار سواک پاسبانهای دست به باتون شلاق زنها دشنام دهندگان اگر یکیشان فقط یکیشان یک بار برای مدتی کوتاه مهربان و معدب و منطقی سخن می گفت ما یک سرخل اصلاح می شدیم این حسن بزرگ سلاخان است که فقط سلاخند نه چیز دیگر، یکی بر من مینشست یکی روی پاهامان. دمر، زانوهایمان را تخت شلاق له می کرد و بعد چقدر دشنام می شنیدیم و همینها بود که ما را گرم می کرد. ما را به ادامه دادن وامی داشت آنها نسلی بودند معتاد به جنگ‌های پنهانی ها، شبنامه ها فرار محاصره برگشت کتک بازجویی بازپرسی بنده یک زندان عمومی کتک رؤیا خوب است همه چیز خوب است ما هستیم آنها که هستند میجنگند و آنها که نمی جنگند نیستند تا که بجنگند اشپنگلر نیچه مارکس، ما او پناه بر خدا همه چیزمان شعار بود و در شعارها خون بود خون مخالفت با ظلم، با بیگانه، با خفت نداشت استقلال ما عخت دویدن بودیم، آهسته راه رفتن خستمان می کرد. آنها نیامده بودند برای آن که در آرامش قدم بزنند هر حرکتی قابل توجیه بود حتی میخارگی های گهگاهی فشار معنا داشت نفس تنگه سیگار پشت سیگار زیر سیگارهای همیشه پر چشمان همیشه سرخ خستگی های آور. جای عشق کجاست؟ دختران حزبی آرام و باوقار اما به هنگام فریاد کشیدن، فریاد کشان، پسران حزبی، نگاه هایی که میگفتند گفتند، افسوس، وظیفه، تعهد، ملاقات، ملاقاتی، چرا اصل نمی آید، چرا مهری نمی آید، چرا فرزانه نمی آید، از مادر هیچ خبر نداری؟ فقط پادرد عذیتش می کند، به خاطر آنکه به چای قانع نبود برنج هم کاشت چای کمرش را شکست برنج فلجش کرد لباسهایشان را ها در حمام زندان می‌شستند حتی لباس شستن هم معنا داشت خوش کردن هم با بند رخت پرچمی از زشتی نمیساختند، پرچمی از بی‌آبرویی باید برای پهن کردن لباس‌ها پنهانگاهی آفتابگیر داشته باشیم. شطرنج در آن روزگار خوش. ساعت‌های بیکاری موجه. تا شترنج شطرنج هم چقدر معنا داشت، چقدر عمیق بود. چه تهاجمی به شاه می‌کردند. گیل مرد، اهل یک دور شطرنج نیستی، جنگ بیدلیلی است اصل. دیگر شاهی در کار نیست. دست گرمی برای روز مبادا در همان روز مبادا دست های من خود به خود گرم می شود انقلاب تجربه کردنی نیست آن وقت ها جنگل معنا داشت سخره گار پناهگاه کوهپایه چشمه ای در فراده است قمقمه برف شمال قله کوه پشتی تناب اضافه ترقه شیشه های بنزین زرنیخ و کلرات انفجار شیشه های فرو ریخته شرکت هواپیمایی اسرائیل ناگهان صدای و ناگهان فرو ریزشی همه میدوند صورت مردی خون آلود است مغلها از راه می رسند. جای عشق کجاست؟ مغلها می رسند. از ماشینهای ارتشی مثل زباله فرو می‌ریزند. میدوند می‌کوبند. ده دقیقه از حادثه گذشته است، اینها را چرا می زنید؟ می دستگیر می کنند. یک حلقه محاصره درست می کنند. من و تو بیرون خط محاصره ایستاده بودیم و نگاه میکردیم و میلرزیدیم. اگر فرار میکردند، اگر میماندند، اگر همچنان ایستاده میلرزیدند، مغلها به تاریخ هم معنا بخشیدند. اسکندر، اسپانیایی ها، هلندی ها، فرانسوی ها،, ها،, ها، وحدت ملی یعنی صفبندی در برابر دشمن، وقتی دشمنی در کار نیست، وحدت ملی را چه کار باید کرد؟ استعمار پنهان بدترین نوع استعمار است. خوشابهال ویت کنگ ها، خوشابهال جمال عبدالناصر، جای عشق کجاست؟ در صندوقچه جادو، جایش محفوظ است. می خواهم نباشد، عشق عکس یادگاری نیست. عشق گران کالای مصرفی جهان است، یک کاسه آب خورک برای تشنه همیشه تشنه قلبه نهایی بر اتش مرگ اعتبار نهایی آب است یک لغمنان نان برای نفس گرسنگی سیری آغاز اندوه گندم است امروز فردا بازجویی ها همه خوبند من به این دستگیری و این بازجویی اعتراض دارم سرکار تخته را بیاور، اعتراض دارد. من به تخت شلاق هم اعتراض دارم. به شکنجه هم اعتراض دارم. به اعدام چطور؟ اعدام زیباست. اوج معناست. سیب زمینی های برشته داغ داغ. زیر خاکستر. نمک، فلفل، نان گرم نرم. چه جان سیب زمینی برشته را با نان نمیخورند، گلوگیر است گل پر نان برای پنیر و پونه ی لب جوی چتاب چتاب آن وقتها همه چیز داغ بود همه چیز زیر خاکستر بود الا شعله برای من سخت است که خودمان را با شرایط تازه تطبیق بدهیم در آب بودند به خشکی افتادگی را نمیدانستند یا در خشکی بودند به آب افتادگی را بلد نبودند. چه فرق می کند؟ آنها متعلق به این حال و هوا نبودند. خوب است اعتراض کنیم. به چه چیز؟ به هر چیز چه فرق می کند؟ ما گیاه اعتراضیم می شود. اما خطر آن است که با بدترین ها هم صدا شویم. از بیم همصدا شدن با بدترین ها که نمی توانیم بی صدا بمانیم. به خاطر نفس اعتراض که نمی شود اعتراض کرد. پس این به روح را چه کنیم؟ باطل اباطیل، هیچ چیز در زیر آسمان خدا تازه نیست. جامعه ابن داود می گوید. کاش می رفتیم سوالان. لاغل زنبوری داشتیم. نیشی. اصلی. تازه درخت سیب هم می کاشتیم. انگور، انگور، چقدر انگور. می توانی آن یک نواختی زیبا را تحمل کنی؟ گمان نمی کنم. است. به گرانی روزافزون اعتراض کنیم. اعتراض حقیقی است. خب برویم کار کنیم، تولید کنیم، گرانی مرز جوامعی است که همه مردمش تن به تولید نمی دهند. انگلی زیستن با گرانی زیستن است. مصیبت مفتخاری اگر هر کداممان در هر سال فقط یک درخت میوه بکاریم بعد از ده سال هفتصد میلیون درخت میوه تازه در سراسر وطن کاشتیم لا اقل آیا باز هم میوه گران خواهد بود؟ جر و بحث های حزبی اقتصادی را به درون خلوتمان نیاور چرا؟ چرا نیاورم؟ عشق یک توهم بازی گوشانه تنگرایانه نیست؟ عشق باید بتواند بر مشکلات قلبه کند و مشکلات تازه خلق کند اگر هر کداممان در سال فقط سه جفت و خروس نگه داریم و فرصت بدهیم که در سال فقط صاحب ده تا جوجه بشوند بعد از ده سال دو میلیارد مرغ و خروس خواهیم داشت و مرغ و خروس وطن را برخواهد داشت عشق باید آگاه باشد، مسلط باشد، زنده باشد، یاقی باشد، بالنده باشد، عشق یک عکس یادگاری نیست، گفته بودی عشق یک مزاح شش ماه یا یک سال هم نیست فرار از خانه قدیمی، سفره قدیمی، واجه های قدیمی و روابط قدیمی هم نیست